حکایت بزرگی را پرسیدم در معنی این حدیث که اعدا عدوب بکن نفس و کلتی بین جنبیک، گفت به حکم آن که هران دشمنی را که وی احسان کنی دوست گردد مگر نفس را که چندان که مدارا بیش کنی مخالفت زیادت کند، فرشتخون شود آدمی به کم خوردن و گر خورد چو بهایم بیوفتد چو جماد مراد هر که براری مطیع امر تو گشت خلاف نفس که فرمان دهد چو یافت مرا